بیان دوازده سبت از نصارا قوم ایسا را بدن در دار و گیر حاکمانشان ده امیر و دو امیر هر فریقی مر امیری را تبع بنده گشته میر خود را از تمع این و این دو امیر و قومشان گشته بند آن وزیر بد نشان اعتماد جمله بر گفتار او اقتدار جمله بر رفتار او پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان بدادی گر دو گفتی بمیر